شنوب ماه بگذشت بر دخت شاه یکی پورش آمد شد تابند بند ماه چوخندان شد و چهره شاداب کرد برا نام تحمین سهراب کرد چو سه سال شد زخم چوگان گرفت زخم ضربه چون چوگان رو با زربه پیشتر از اینکه بچه ها برسن به مرحله که چوگان باشه تمرین میکردن در خورسالی با دو چوب بلند و کتاب نام چوگال که یکی از اونا چوب بود یکی گال بود و در خورسان چوگال گفته میشد این همون چیزی که در جاهای دیگه الکتوحک خوانده شد گمان ندارم شما در دمان کردیم یا جای دیگه؟ خوب. له اون با تو ها در ما شهر که می حتی مثلا, مثلاً بود. مزشتیم. مزشتیم. با این رو بلند این رو بالا و با این میز این, این, این کار رو از این بود و که اون در حقیقت گال رو از دو طرف میتراشیدن به صورت مخروط دو تا مخروط در دو طرف اون این چ رو می زدن رو این مخروط این گال میچرخید رو هوا میرفت بالا برای که روی این محدود خورده دیگه میچرخید تون تون میچرخید که با دست اینطور این طور بزنه این برای این بلد. بلد. بلد. بلد. بلد. مهمتر از اون رکت بود اصلا این میگه که ذغراب در سه سالگی دیگه خیلی زود خیلی زود زخمش توگان گرفت به پنجم دل تیر و پیکان گرفت یعنی دلووریش به جایی که تیر به دست شده ساله شد تون زمین کس نبود که یارست با او نبرد از بود و خوبیم یعنی کند. این اینجا جاییست که چند بار تکرار میشه در داستان ایران که فرزندان وقتی که از تاریخ گذشته بی اطلاع هستند میان نزد مادر و از مادر میفرسن. این چیزی که اکنون میخونم که سه از مادر میفرسه این در در تاریخ. برای مادر آمد با پرسید از اوی بدو گفت قسطاخ با من بگوی زی تخمه کیم؟ از کدام این گوهر؟ چه بویم چه پرسد کسی از پدر؟ یعنی پرسش از من بمونم نهان نمونم تا زنده هم در جهان. یعنی سورا به جایی رسیده که میدونه که وجود فررند حتما این پدر میخواد با پدر بگوید این خود پدر رو بگه اگر, نه؟ اگر من پدر ندارم تو رو از بین از از جهان بیرون می کنم می بله من بله. بله. پدرم کیه زندگی فرند با پدر و مادره بیشه کجاست به گفت مادر که بشنوس سخون بدین شادمان باشتوندی مکن تو پور گره پیلتن رستمی زرستان سامی و از نیرمی از ای را سرت برتر است که تخم توزن ناورگوهر است. جهان آفرین تا جهان آفرید سواری چو رستم می آمد بدید. یکی نام از رستم جنگ جود بیاورد و بینمود تنهان بدوی. بدو گفت افراقسی ها بین سخون نباید که داند سر تا ببوند. پدر گرشناس که تو زین نشان، شدستی سر و گردن کشان اینی گردن کش شدی شد آنت به خانت که خیش دل مادرت از در ریش مفهوم اینی که من تا به حال از پدرتو نگفتم دو دلیل داشت یکی اینکه افراسی وگه اگر بدونه تو رو به طرف خودش میکشه و اگر روستان بدونه که تور به طرف من بیچاره میشم. میشه کم کم اینجا متوجه میشین که خب اگر رستم سهراب رو بخونه خب هم میتونه بخونه چرا مادر نمیتونه بیاد چرا وقتی که رستم رفت تأمینه رو با خودش نبود این اون رو همزار شبانه ماست در حقیقت این سر رمین. در زبانه آریایی سرزمین رمین هست اگر مثلا یه دو توتانش کاره همه دیگه پیون میگن بگم این دوتا دانشور خواهر کردیم اگر دوتا شهر رو بخوام پیون بدم میگن خواهر شهر معنیسه همکنون معنیسه در زبان مثل فرانسه یا آلمانی کاملا این علامت تحنیزش هست در زبان های زبان مثل انگلیسی که این علامت از بین رفته متا نام خواهر باقیم خواهر شهر این که از رستم رفت و تعمینر نبود، نورد به دلیل اونجا سرزمین بود. و نجاد تازهی در اونجا پدیدار شد که نام سرخاب یا سهراب کرد. چونین گفت سهراب کن در جهان کسی این سخن را ندارد نهان. بزرگان جنگاور از باستان زرستم زنند این زمان داستان. داستان زدن یعنی ضرور بعد هارو ممکن یک ضرب المثل هست این خیلی نادرسته خود اولا میخوایم بگیم بعد بگیم مثالی هست داستان زدن یعنی ضرب المثل نمیگه از رستم داستان میزنن نه در گفتارشون همواره مثال از رستم میارن نه این ضرب المثل نه اگر بگیم داستان درست در داستان زدن یعنی ضرب المثل اما اگر بگیم یک ضرب المثل هست این نادرسته ما ب... میخوایم عربیشو بگیم بعد بگیم, بگیم مثلی هست اما یک خود پارسی دهیم که باید بگیم داستانی است. بزرگان جنگ آور از باستان زرستم زنند این زمان داستان نه نژادی که چون این بود نهان کردن از من چاو این بود کنون من ز توران و جنگ آوران پراز آورم لشکری بی کران از کاه از گاه کابوس را از ایران ببارم پی توس را برستم به هم تاج و تخت و کلا نشانمش برگاه کاووس چا از ایران به توران شوم جنگ جوی عواشاه روی را آورم به روی یعنی با افراسی ها تو رستم پدر باشد و من پسر نباید به گیتی یکی تاج بر یعنی دستم باید پازش باشه من پهلاونه دربارش باشه. با درود به استاد بزنگ آیا بگفتیم خیلی دوستی خانر نزد ایرانی همیست و پس درست هست با سپاس فراوان از استاد خیلطمند مجدی محترم میسیم از کاسپی هم شاید پوشید کاسپین ش... شهر کابوس شست و این بیدالعبیات افسوس هست عبیات افسوس بعد پیامت بردی اه... آیوزو چه رخ عشنگ میخونید شاید باورتون نشه من لیسانس گرفتم اما هر موقع میخوام به آرامش برسم و روحم لذت ببره کتاب شاهنمه میخونم و کتاب ادبیات میخونم شاد باشید به با امید اون روزی که همه ای فرزندان ایران شاهنمه بکنم و حتی پیشتر از لیسانس در دستانها بته ما آغاز کردیم من شخصا خودم داستانهایرسن پهلوان رو در یازده جلد چاپ کردم تقریبا په یتسال پیش، و جا دوبار رسید و اکنون بر اساس ویرایش جدیدی شاهنامه ما اینا رو داریم حاضر میخوریم فرزندان ایران باید با شاهنامه بزرگ بشن برای که همه چیز در این شاهنامه هست گذشت مردانگی راستی پاکی جانبازی در راه میهند صرف رازی رادی مردانگی هر چیزی که شما بخوید در این داستان هست این خیلی میتونه اینه تمام نمای فرهنگ را باشه بچه های هم از اون بحره برند درود بر شما در خراسانک نزدیک تپیز قلعه بابک یا همون قلعه زرحاک از راه نمایی کنید ممنون میشه درود بر شما و درود با آزرواجان و بابک پهلوان آزرواجان البته اونجا قلعه زرحاک نیست ولی اون این گونه قلعه ها که باکو در پرد جه ایران و من میام دختر و بعد از اوزار باجام این پیر خداروسی پیشو فیفا بابک اینو هم از یادگار دوره فردونه و ما اون وقت نمیدونم که شما گوش کردید یا نه که بیشتر از فردون دوران عجیده هاک بود و عجیده هاک یعنی ستم بابل یعنی تسلط بابلیان بر ایران که همراه با شور کشیدن دو آتششون در روی ایران شهر بوده کی در اون یکی البرز که در نزدیکی مرز امروز گردستان هست آن وقت این جوانان ایران رو برخی این فدای این آتیشتان ها میکردن و اتفاقا سل دو روز پیش چومه گذشته ما به همراه گروه از یاران بنیاد نشهور رفتیم به دیدن اونجایی که در نزدیکی دماغن جوانان رو میکووشند در برابر دم به نام نماز چال این در کتاب داستان ایران خواهد اومد جایی شگفتی است هزار سال فرزندان ایران رو گرفتن تا بودن بسته چیوز یعنی میبشتنشون با تناب و میدارند اینا رو در سطح تورانی از زی ها بسیار بسیار سخت می بالا که تا اونجا بکشنشون برای خاطر زخ. و خب بنابراین اگر گفتی باشقل اجیده یعنی این قلعه فریددون که در زمان اج بوده و بعد با وکن پرولووان از اون استفاده کرده. از این قلعه ها در ایران زیاد بوده از جمله در علموت هست که و از اون, اون از اون درقیت کلاته یا قلعه یادیش حسن سبوا هم استفاده میکرده این نه به اون معنی که حسن ص اونجا رو ساخته باشه. اینا همه کونن مربوز زمان فریدان با مبارزه فریدان با زخاک درود بر استاد گرانگرد جناب جنیدی و جناب هدایتی رتفاً معنی ماخ سالار و حریوه رو بفرمایید با سپاس حسین نجاد ماخ سالار یعنی سالار و بزرگ حریوه بله. حریوه اسم در اقصال اسم کوهن هراس بوده هراتی ها یه خواستی دارن در زبانشون که هیارو بیشتر این خصوصا تلفظ میکنم. مثلا در زبان امروز هراتی ها چون من دوست فراوان دارم مثلا رو به این میگم که میگن اوتل یعنی ه تبدیل به به میشه و تلم تبدیل به تل میشه بسیار باجوا هست که ه هست در زبان هراتی تبدیل میشه به ای یعنی عریبه و یعنی هرات نام کهنه شهر زیبای خراسان و بزرگ هرات این حساب رو بخورید من هیچ سوالی ندارم. ا مونده نبوشید برای واژه‌های زرس و مایه واژه‌ی برابر بگویید. نینسین کلی شمی. ام زارت تا رونفورس آونده. بله. فا مایه یعنی آپتیه. در روز روز آزادی آبادان و ده مر جشن میذگان خویا شده بود. شاد باشید اکبری از خلخال، خلخال و اردویل و آزربایجان دل در مهر ایران و فردوسی و زبان فارسی دارند. آفرین، آفرین به اکبری و به خلخال و به تبریز اردبیل و آزربایجان که قبلگاه ایران و ایران هم مهر آزربایجان را همیشه در جان داره و در همه جای ایران مردم این درود و سباس رو نصد به آزربایجان دارند. اما مهرگان مصادف با هفته آینده که در اون من همطور که در هفته بیشه در بای مهرگان سخن خواهیم گفت. فرانس ها با سخن ها شنید خوش آمد رو و شادی کوید میدونیم که در رار پتن پیشین امروز هم دورلتها ها که کنین دست داشته باشن کسانی باشن که از اخبار همیشه مطلع بشن و اون رو بگووششا بن. مثلن در بهمان خواشان میدونیم که کسانی بودن که نامشون بود چشم گشت شاهع یعنی به جای شاه ببینن به جای شاه همه سوخن ها از این کشور، بون کشور حتی خبر میرسید. امروز هم هست این کار. حالا افراسیاب ها که سهراب بخواد لشکر بکشه به ایران. خوش آمد چو خندید و شادی گزید بگردان لشکر سپذار گفت که این راز باید که ماند نه چو چه را رند هر دو بروی. تن تن بود بگمان جنگ جوی. پدر را نباید که دانت پسر دانستن یعنی شناختم هنوز از زبان انگلیسی باقی مونده تو ناو همه منی دانستنه همه شناختن باقی مونده در عدبیت و فارسی بسیار هست از جمله همینجا دانستن شناختن پدر را نباید که دانت پسر که جوشت دل از مهر و جان از گوهر یعنی نجادش از کوهر یعنی نجاد نجادش تحریک میشه و همدیگر خواهند شما مگر کند را ورده سال خورد شبت کشته بردست این شیر برد از آن پس بسازید سهراب را ببندید یک شب بر او خواب را یعنی وقتی که سهراب برسند و کشت شما تو خواب رو بکشید برفتند بیدار تو پهلوان از نزدیک صورا و روشن روان. یکی نا... نامه با لابه و دل بفند. نوشته به نزدیک آن ارجمه که گر تخت ایران به چنگ آوری زن برآساید از داوری. این دیگه بین ایران ایران توران دیگه جنگ نخواهد بود ایران از آن توران میشه. فرستند چندان که باید سپاه تو تخت به این شینو برنکولاخ به توران و و چون بارمان دلی و سفه نبود این زمان. فرستادم اینک به فرمان تو که باشند یک چند مهمان تو. اگر جنگ جویی تو جنگ آورند. جهان بر تنگ جنگ آورند. خب اینجا حالا جایست که ما میتنیم داوری کنیم که دخصیری کی بود. برمیگردیم به داستان فریدون. موقعی که فیدون رو پرانک سپر پران مرد دینی که برکوه بود که از کار دیتی تیوی اندوه هم در همون دیش که همه اکنی صحبت کردیم این دیش همه از زمان فیدون یعنی زمان زحاک استیلای زحاک بوده بابلیان و بعد ایرانیان در اون دیش ها زنی. و این دیش ها اینه که یه سفاری که بخوان کنن اینجا با چند تا سنگ میتونم سفارو رو کنن. از که در این... یک بله. بلندی خیلی و یه زمینی عجیب که حالا بعد بیشترش کار بشه و سیمان بیدار شد به وقتی که فریدون 16 ساله شد نه. همین کاره اومد پیش ترانک و گفت که که هم من در سخم کدام گوهر یکی دانشی داستانی بزن. یعنی یک داستانی بگو که از راه دانش پذیرفته بشه. که هم من در سخم این گوهر. این پژوهش در کار تاریخه. وقتی که مدتی مردم کشور به علالی حالا حمله بیگانگان یا فرهنگ بیگانگان یا هر علتی از کدشتی خودتون میبرند نخستین حرکت آنها پژوهش در تاریخی که ما چی بودیم که در بود یعنی چی بودیم ما روزه رو چطور میگرمدیم خب یک ما گفت که تو اینطور تو پسر سر هستی و بردن کشتنش گرفتن تو بردن بسته چویوز و رو برای سراورد و روز و فریزون دیگه خوب من اینک آمادن برای جنگ و انتقام خون پدرم می بینیم که فرانای که خرد دیگه نه جهان رو به چشم جوانی جهان را به چشم جوانی مبین اکنون جایی نبرد تو بازه حاق نیست هفت کشه جهان به فرمان هستن باید بیشتر نیز رو اما تهمیلی چنین گفتاری پاپ بسر نگفت. چطور شما فکر میکنید که گفتن که همیشه پدر رو پی ها جوان رو میخوشن؟ من داریم زر, زر این رو جلو سهراب رو میگرم. دیدن پدر لو گشتن دنبال پدر اصلا چه نیاز به سپاه داره؟ چه سهراب که دور از فرهنگ ایرانی زیسته فکرمونه باید بیاد ایران کابوس رو برندازم از تخت کابوس رو به ایران پیی توس را. همه ایران رو آتیش بزنم چگاه کنم. پدرم رو پادشا کنم بیام ایران رو خراب کنم پدر من شاه جهان باشه و من پهل باشه خوب خب وقتی همه جا به ایران شد این شاه شاهی جهان بره. این درست نیست این حرکت نادرست بود و کسانی که در حقیقت مغز و رمز داستانویشان رو توجه ندارند فورا تیر سرزنش رو متوجه رستن میکنند که داره از تردم نیاکان خودش دفاع میکنه و نمیدونه که پسرش شما نوسته یک ایک پوسیشی داشت پوسیش زیاد هست اجازه بید. بخونیم تو این فاصله سلام استاد عزیز ما کرد هستیم و خیلی خوشحالیم که جمعه های کردی را فراموش نمی به دارت شما وستخار میکنیم آمانج از پیرانشم بح بح بح, بح. پیرانشم رو بخیلی درستیدیم به داستانش من خواهم گفت آمانج به کردستان به اون درشتا به اون کوها و اون زبان و خوب اون جامعه های خوبی که کم کم داره از بین میره با اون زیبایی ها همه درود و خوب بالاخره من با عنوان یک ایرانی یک کسی که خاک ایران هست همه جای خاک ایران رو ستا... می ستایم بر جمله کردستان که آزربایجان رو چنان که ایران رو تبرستان رو چنان که بلوشستان رو خیلی انسان های شریف و پاکی هستن و خیلی تحت فشار هستن یعنی زندگیشون به بس... خوشی نمیگذاره برای که فقیر هستند این وضعیت تورگی که بلوچ ها زیاد برخوردار نیستند مال و نعمت جهان. با این حال انسان های بسیار آزاده شرید گفتند همه جای ایران رو دوست داریم ایران در برگیرنده همه این اقوام و نژادهاست هاست و همه نیاکانمون برای نگهبانی این کشور جان با درود واژه رستم به چه معنی است از شیراز. در زبان عروی رووض سطحه روود یعنی چیزی که می رویید یعنی بزرگ می شود. در فارسی ازش با موده رویدن روود درسط یعنی کودکی که بالا میگیره و خیلی سنگین میشه. این در پ شد رودتن در فارسی تش افتاد شد روستن. و خب افزاندگان شانومه اینو خیال کردن که رشتم بوده که جزو افزاندگان افزا بودن که وقتی که جزو برستاندگان به دنیا بودن و بعد که بیگوشت و به دنیا رو نگاه کرد گفت رشتم یعنی افزاندگان این نر از آگاهی بیبهره بودن که این باجره نمیتونه رستم یعنی دارنده پیکر قبی تحمینه به چمانم تحمینم هم به همین منی تحمه یعنی تحم و رستم و تحم نه طیامک که دیگه که اینجا این طیامیک هستش درود در آقای هدایتی را دوستا جدی های کتاب های کارنامی ارد شیر بابکان و نامه شهرهای ایران یا کتاب های دیگر به زبان پهلوی به زبان پارسی امروزی برگردانده شده است یا نه پگاه از ماشا. دروددادپگاه که ما رو فرماش قعه از ماشر خیلی سختونبال میکن از بنیاد ژور را سیدی میخواد نوشته او کتاب میخواد. شاد باشین پادل بله. کتاب شهر شهرهای ایران رو نخستی با استعداد ترجمه کرد خانوم عادیشی باباکان همچنین بعدا دکتر مشکور اون رو یه ترجمه جدید ازش بدست داد یعنی خانوم عادیشی باباکان بعد فراگشیم یه ترجمه جدیدتر و حالا اگر زمان بیابان من هم در نظر دارم که خانوم عادیشی را خان رو یه ترجمه خیلی تازه تر بدم و با نقد ها یعنی سنجش های پراوان اe... این رو به ملت ایران پیش بشکنم با سلام و خسته نباشید، نو... مانده نباشید. با سلام و مانده نواشید خواهد نمره خوب بگیرم با سلام و مانده نباشید. چند درصد شاهنامه افثانه است چقدر حدیفت خود شاهنامه هیچ افسانه نداره همه حقیقته کرده تا با توجه به این رمزهای که خوش شده میشه شما اگر وقتی بدنید که تحمول تخم و اروپه اصلا اروپا ارگیشی روپه علیصه ای گرتیشنی رو بودن و این زمانی که جانوران رو چیکار کردن و احلی کردن میبینید که کاملا درسته شما نام همش درسته و در افساده ها بعد بله افسانه های نادرست دیده میشه با سلام خدمت رستاج جنیدی من از زادگاه صاحب بن صاحب بن عباد, صاحب بن عباد. عباد وزیر دین وزیر آل بویه شهر تالخونچه استوهان به شما پیام میده هم در خصوص مفهوم اسب در شاهنامه توضیح دهید حامد تاهری از تالخونچه درود به تالخونچه و سفاهان امسال من شنیدم که دیگه آب زاین درود رو بر سفاهانیان نبستم و سفاهانیان جشت دارم اسب از ریش عصب عوستوی یعنی شتاب صورت عصبه یعنجانری باشتا صرت با یره این وا اس در بعضی از نامهای دیگهم هست مثلا رن روپاس همی الان واژروف رو فیلم در زبان یعن رو بودن روپاس در پهلوی شده روپاس در پرسه ده سه تبدیل به هم میشه روباینده سریع میدونید که یا ا تو این فیلمها دیدید یا اگر دیگه شما خود روباه رو, با رو ندیده باشین تو این فیلم ها و این چیزا که انیمیشن ها اینا رو خیلی زود مرغو میگیره فرار میکنه یعنی ایستاده ولی در یک حرکت خیلی, خیلی تند مرغو میگیره میبره این رو پاس یعنی رو بانده چری اصلا از چه اف یعنی سرعت شتاب ب رفتن من میخونم پیام چون زیاد هستش پیام کارو تو من خسته رسیدم میخوام که جا بشم انا دروت به شما و استاد فیدان جنیدی. استاد اسم پرهام, ب... پرهام به چه معناست؟ پرهام فارسی شده براهامه که در قرب ایران بعدا توزیان اون رو ابراهیم کردن. براهام در ایران پرهام خوند شد و در عربستان ابراهیم. خو مشی میشنویم و زمانم زیاد نداریم حالا یه بخش دیگه در خدمت دكتور فریدون جونودی هستیم و درباره داستان رستم و سحراب صحبت میکنند که الان در این گیر وداز به دنبال پدر هستش در جنگ جویی تو جنگ آورند، جهان بردندیش تنگ آورند، این جنبش سخراب برای آغاز نبرد که در اون نبرد بردندیش دشمنشون ایران هست و دنبالی دستان رو در هفته بنده بیاری از دان میگیریم. و استاد جونیدی این بیت درست از شهرنامه یا نه میگه هر که شاهنامه خانی کند گرزن بود پهلوانی کند متشکرم. درود بر شما این بیت صورت درستش اینطوریه که هرون کس که شهرنامه خانی کند البته این از افسده های شانوم هست بعدی فکتوسی به دوستران شانوم به شانوم یعنی به شانوم های همین نشد در همی طور مردم در قدابل مردم هست تا خوب من هست یه بیگی که مخمومه برد نداره با سلام بانده نباشید به شما مجری مختلف استاد جنیدی سوال به که چرا میگویند هفت شهر قفخاص معنای قفخاص یعنی چه؟ یعقوبی از تهران هفت شهر قفوز من نشیدم چارده شهر قفوز در پیت فایتی و خواجاری و از رفت و اکنون هر از چندتا چند تا از اونا گرده هم یک کشوری تشکیل دادن بعد از فروپاشی شوروی و هفت نیست بیشتر اون که میگن هفت شهر هف عشقی که در داستان آثار نیش که اون دی یعنی در ما پیوند نداره.